سوفی از پرتو و می راز نهانی دانست گوهر هر کس از این دل توانی دانست قدر مجموعه گل مرگ سهر داند و بس که نهر کو ورگ خواند معانی دانست عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست آن شدکنون که زعبنای عوامندیشم محتسب نیست در این عیشنهانی دانست دل براسای شما مسلحت وقت ندید ورنه از جانب ما دلنگرانی دانست سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق هر که قدر نفس باد یمانی دانست ای که از دفتر اغلایت اشخاموزی ترسم نکته به تحقیق ندانی دانست می بیاور که ننازد به گل باغ جهان هر که غارتگری خزانی غزانی دانست حافظ این گوهر منظوم که از تب انگیف دسر تربیت آصف سانی دانه است